بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والسيد المرسلين وآل وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله واسكن فسيح جنانه بعثه الله بالنذارة عن الشر ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا, يا ايها المدفر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر, ينذر, ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء فصلى الله صلى الله عليه وسلم مبعوث شود في إنك إنزار بدأ الشرك ودعبت بده بسي توحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أنعبد الله دعبت بسي توحيد واجتنب الطابوت إنزار التوغوت لا إله إلا الله بفتمناف بإثبات نافي مبارزه، الشرك، چیزی اكتر اكتر إلا انزار مبارزه اعلام برایات از شرک از طاغوت از هر چیزی که فرخیده و اطاعت میشه بیرون از خدا اگر الله اثبات آن علبد الله و اجتناب از طاغوت نافی و اثبات این دعابت رسول الله صلی الله علیه و آن انزار شرک و دعابت بسیج توحید توحید توحیدم توحید دنوتوحید درشیم توحید علمی و توحید عملي توحید معرفت و اثبات و توحید و تلاو توحید الوهیات یا عبادات و توحید روبیت و از و صفات این دو تا تو نوع توحید داریم توحید روبیت اسم و اسماء توشید صفات توحید یک تا قرار دادن خداوند در افعالش و توحید عملی یک تا قرار دادن خداوند در اعمال ماست همون توحید عبادات یا توحید الوهیات یا توحید قصد و ترف این دو تا هست که دلالت قرآن برش هست و راست بگم داعی بوده به سوی این دو توشید روشی به سوی این دو نمط روشی به توحید عبودیت و الولويات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله بحث عبادته، بحس عبوديته، بحث بندقيهاس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بمن بندقيات بدان يدعو إلى التوحيد. يا معاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فإنك أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله بحت التوحيد. أذل التوحيد دعوات. فهذا مذكَّر صلى الله عليه وسلم طالبا من فزاه. يا إذا نزلت بصاحب فدعوهم. إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة بسي توشيد دعوة بسي يكتفرسي لأن أسل توشيد قفتين يكتفرسي يكتفر قرار دادان قدوان دار أعمال من تفرسشي من والدليل أن برئي قد يفرمودي قدوان يا أيها المدثر لأن قد معلف إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بائق رنبي شد ورسالت بيشتاد شد بعد الشيء سري مدثر قدوان يشبلي يا أيها المدثر قم فانذر يا أيها المدثر أصل مدثر يعني منكتف پوشیده شده است صاحب لباس صاحب پوشش اي کسی که پوشیده شده است اصل مدثر المتضط ال متدثر با وملابسه کسی ونحو ذلك کسی که پوشیده شده از بالباس يا أيها المدثر قم فانذر قم أمره ده سوره بلند هذا دا السورة دادن دادان الله بالندارة قم فأنذر وربك فكبر خلق مسألة مهمة إن وربك فكبر تكبير بفتن قدابان أسلقة هي تكبير خذش بعدان مئات شرح شميدة توزيح شميدة مئات ومعنى قم فأنذر ينذر, ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد تكبير قدابان ما اولین مرتبه تکبیر داریم، در تکبیر در مسائل علمی، در توحید معرفت و اثبات در توحید ربوبیت. در آن علمی که نسبت به خدا داریم، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى، یعنی خدا بالاترین مسار رو داره در ربوبیتش و صفاتش. حلم خدا، علم خدا، صفات خدا و دیگر صفات خداوند از لطفش، از حکیم بودنش و دیگر صفاتش قابل قیاس با مخلوق نیست دیدنش شنیدنش ارادت مشیاتش خلق و آفرینشش قدرتش قابل قیاس با انسان نیست قابل قیاس با انسان نیست باتر همین خداوند نهی میکنه از مثال زدن برای خدا فلا تبریقوا لله الامثال نفی مشابهت میکنه از خودش لیس کم مثل هیچ و هو سمیع بس این مسئله خیلی مهمی هست که خداوند را باید تکبیر بگوییم، تعظیم بگوییم در صفاتش، در ربوبیتش، در عظمتش هیچ کسی دیگه بالاتر از خداوند نیست. این نوع اول اتب... اتب... اتب... تکبیر هست که اینجا خداوند متعال دستور میده به رسول الله صلی الله علیه وسلم که خداوند را تکبیر بگویید. هیچ وقت انسان نباید بگه که من بچه نمیارم چون رزق روزیم ضعیفه. اون کسی که رزق روزی می خداونده تکبیر بگو خداوند را با این کار و ربک فکر به تکبیر گفتن خداوند اینی که انسان اعتمادش به خداوند باشه واقع ضبوب روزی را رو خدا می انسان اعتمادش به خدا باشه نوع دوم انواع تکبیر توشید در توشید عبودیت در توشید عبادت در توشید علوهیت در توشید عملی قصد و طلب انسان هیچ وقت رو به مرده نیاره، رو به بت نیاره، رو به شخص دیگه نیاره. خودش پایبند به دین باشه، پایبند به دعاء باشه، پایبند به اسلام باشه. تعویذی نبنده. در قسمش، قسمی به جز خدا به کسی دیگه نخوره، کسی دیگه رو جز خدا تعظیم نگویه. نه به جانم، نه به جان نه به کسی دیگه. فقط به خداوند یک تا قسم بخوره. همون‌طور که در حدیث داریم: من حلف به الله فقد کسی که قسم بغیر خدا رو خوره شرک شده پس باید معاذب باشیم در شرک نیفتیم خدا را تعظیم بکنیم در اقوالمون خدا را تعظیم بگوییم در رفتارمون به اعتماد به کسی جز خدا نداشته باشیم با کبر و تکبیر سومین نوع تکبیر تکبیر خداوند در قضا و قدری که ما خوندیم علمی که خدا داره قابل قیاس با علم خود و علم خود مقیاس نگیریم چون ما میدونیم یه چیزی رفت میده، فکر میکنه با آن چیزی که خدا میدونه. همونطور که در اسماء صفاتش دیدن ما میبینیم خدا هم میبینه ولی خداوند همه مخلوقات رو در یک آن همه جا میبینه. کسی نمیدونه، نزدیکی سخت برای خدا پنهان نه کسی که زیر زمینه. ولی برای ما نه پشت این دیوارو نمبینیم، نمیدونیم چی خبره. قابل قیاسی، قضا و قدر خداوند در نمیتونه. کسی نمی تونه بفهم علم سابق خداوند نسبت به تمامی کاینات علم سابق خداوند به حتی به اون برگی که از روی درخت میگفته کسی نمیدونه قابل قیاس نیست که ما بدونیم که خداوند چگونه میدوند و چگونه برگ میزنه ده. نمیتونیم هم خدا را زیر سوال این تکبیر خدا هست که خدا را با خودمون قیاس نگیریم و قبول داشته باشیم مقدراتش مقدراتش و راضی باشیم در مقابل اون نمون و به قدری خیلی بشره چه خیرش از آن خداست و چه شرش اومد مصیبتی اومد بلایی اومد چرا من اینطوریم، چرا من اونطوریم؟ انسان به زبان نیاره تک از تکبیر گفتن خدا من از اون الله اکبر گفتنش اینی که الله را منزه بدونه اگر مصیبتی به من میرسه به خاطر اینکه خدا شر ورق بزنه نیست به خاطر اینکه بندگان شرن و شر و بشر انجام میدن و مصیبت از دست بندگان سر بیزند نه از دست خدا این بندگانند به واسطه دستیدون از دست خودتون داره برمیاد این با خاطر خودتونه حسن زن انسان با نسبت به خدا داشته باشه و بلفرض من در موصیبتی به انث بید انسان با گمان نیک داشته باشه. حسن زن داشته باشه ان. حتما خدا یک خرییت خاص من ایرانی باشم. من در این خه لک باشم من در این فق باشم من در این فلانی باشم. اما این که انسان بدبین باشه چرا من اینطوری شدم؟ چرا من اونطوری شدم؟ چرا من پدرم از من گرفتی. چرا من مادر من این حسن زننده و فذا و قدر الهی نیست؟ این تطبیر گفتن خداوند در قضا و قدر نیست. انسان باید خداوند را معظم بدونه، تعظیم بکنه در قضا و قدر. خدا منزه این کارها از دست بنده داره برمیاد، نه از دست خداوند. خداوند چرا جلوشون نمیگیره؟ تا این که ما در مقابل صبرمون پیش خدا بالاتر بره، کفاره گناهانمون بشه، منزلتمون بالاتر بره و ما امتحانی بشیم. وما أردت كماميكوناً أم حسفتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين سلوا من قبلكم مستتم البأسة والضغاء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وفي من هم يتريبون أن يشبه بدون قيمات بدون تصحتيبك أشيد خير في شينيان مسيبته الزرار أنباء رواني رباني وحسي شدان فلكن أزيمون شمبه نقاشاً بحث استقامت خدا میخواد ما رو امتحان بکنه این در این مسئله باید خداوند تکبیر بگیم خداوند پاکمون از زهر اون چیزی که میاد از دست ما خودمونه و ما باید خداوند را تعظیم بگوییم چهارمین تکبیر تکبیر در شرع خداست خداوند را تعظیم بکنیم تکبیر بگوییم در شرعش پروردگارا را تویی که این ریش گذاشتی و گفتی عف و لحا. امرت معززه امرت کبیره امرت بزرگه کوچک نیست به امر بزرگی دستور دادی و اون کسی که سرپیچی میکنه از اون بزرگ سرپیچی میکند اون کسی که در دستور میده بزرگه دستورش هم بزرگه و اون کسی که سرپیچی میکنه زلیله خاره و اگر من میخوام این کارو انجام بدم به خاطر اینکه تکبیرت بگم پروردگارا کلامت امر دستورت رو سرو سر چش بذارم اگر گفتی حرام نگاه به نامحرم حرام موسیقی نوش بدم حرام فلان کار انجام بدم رو چش پروردگارا تکبیر رو در شرط تعظیم دیگه خدا را در شرع در دینش چون تو گفتی پروردگار را انسان همیشه من گفتم و بازم میگم انسان نگاه کوچیکی گناه نکنه نگاه اون عظیم و اون کبیری که داره سر نماز سر نماز پی میگه الله اکبر و سر به ذلت میذاره و رکوع و سجده در شرع خدا رو خدا رو هم با تعظیم می‌گویه نگاه کوچیکی گناه نکنه نگاه اون عظیمی بکنه که ازش ترفیچی میکنه اگر کبیر خدا اگر خدا بزرگ زینی نباید حرفش رو زیر پا بذاری حرفش پشت گوش بنداتی حرفش رو باید چه کار بکنی سمعنا و اقعنا سمعنا و اصعنا سم باید بشنبه و عمل بکنه نه اینکه که عصینا مثل یهود بنی اسرائیل بشه این تکبیر خدا در از این چار تکبیر تکبیر در مسائل علمی از سوشید رویت از صفات خدا رو تعظیم بگوید هیچ کسی را با خدا نگیرد. و همیشه بیاد داشته باشد که خداوند او را می‌بیند و می‌شناسد و به حالش آگاه است چنانچه به حال یونس علیه السلام آگاه بود وقتی که در شکم ماهی زندان شد و اونجا تسبیح خدا گفت و همه وقتی که گفت اللهم لا اله الا سبحانك کنت من الظالمین تفردا را تو پاک و منزه من ظالما من ظلم کردم تقصیر از خودش دید و اینقدر این ذکر تکرار کرد که ك... که اون ماهی او را پس کرد به ساحل و خداوند بعد شفا شد خدا حفظش کرد بخاطره بخاطره خدا این مصیبت را بهش دوچار کرد به خاطر چی به خاطر که به سوی خدا برگردد و اینقدر ناامید و هست و رحمت الهی نشه چون معیوس شده بود قامش دعوت میاد میگو قوم هم هدایت نمیشه همیشه حسن ظن به امت اسلام داشته باشید نه بدبین مثلا ها میگن امت گناه میکنن امت مشروب می‌خورن امت نمی‌دونه فلان همیشه خوشبین باشید من قال هلک الناس فهو اهلكهم وذوالف فهو کسی بگه مردم هلاک شدن او اونا رو هلاک کرد چون وظیفه ابلاغه تبلیغه این که بکنن یا نکنن هدایت بشن یا نشن نیست وظیفه تو ابلاغه وظیفه ما به عنوان داعی ابلاغه پیش خدا عذ داریم ندارن دست خداست دست ما نیست حسابمون مسئول حساب کتاب نیست مباد فقط وظیفه انجام بدیم و خوشبین باشیم یونس علیه السلام خداوند امتحان و ابتلاش کرد به خاطر اینکه عجله کرد در بردار توقف داشت که دیگه خلاص طرفش رو گوش بدن چون گوش نداده بودن دیگه ترکشون کرد نباید داعی مایوس بشه از رحمت الهی باید خوشبین بشه به رحمت الهی یا خودش حلاکشون کرده مردم را با پشت دادن به مردم انزوا و گوشگیری یا خودش حلاکتر از مردم از مردم به خاطر ضعف ایمان در مقابل خدا با خاطر عدم اعتماد و توکلش به خدا خاطر عدم خوشبینی و حس نزدنش به خدا به همیشه بدونی، و الله عند حسن ظن عبدی به همیشه خداوند در گمان این انسانه اگر من ملتزم دین شدم، اهل نماز شدم، اهل قیام و تهجیس شدم، به این که خداوند نصرت میده، کمکم میکنه، خدا همونقدر با بنده برخورد میکنه، خداوند ثکینت و آرامش و تمانی بر قلبش نازل میکنه. علاوه دخیر تطمئن و خدا آرامش میکنه. اما این که بگه من کی اصلاح میشم حالا من کی با ایمان میشم آلا من کی با تخوان میشم و تلاش نکنه بر این کار این شخص گمانه نیکی به خدا من یک تا نداره پس تکبیر بگوییم، خدا را تعظیم بگوییم، در علمی که نسبت به خدا داریم به نسبت اصما صفات روبابیتش چه میخواد آفرینشش باشه چه رزقش چه تدبیرش چه حکیم بودنش چه علیم بودنش چه حلیم بودنش. همیشه باید بدونیم، خیلی که خدا نسبت به ما داره، صبری که داره خدا ماها نداریم خداوند حلیم بردباره. اینقدر بندگان معصیتش میکنن ولی چنان همچنان خدا مهلتشو میده. ما هم این چیزی خدا ازمون تشویق نشیم ناراحت نشین،, نشین، بربهمون نخوره، عفو کنیم، صبر کنیم، ببخشیم، بیاموزیم. همونطور که دوستین خدا هم با ما رفتار بکنه. بس خدا رو باید تکبیر بگوییم در اسماء صفاتش و در ربوبیتش. خدا را باید تکبیر بگوییم در علوهیتش در بندگیش جایی که معصیت خداست هیچ وقت خدا را ناراض نکنیم با اون معصیت اطاعت از خدا بکنیم عبادت خدا بکنیم عبادت و اطاعت از خدا را با اطاعت از هوای نفس و شیطانمون عوض نکنیم این تکبیر خدا در عبودیت بندگی و بندگی و تفیل علوهیت و تکبیر بگوییم خدا را در قضا و قدرش راضی باشیم به قسمت‌های تلخ و شیرینش و آخریش هم در بحث تشریعاتش بوده که همیشه خدا را تکبیر و تعظیم بگوییم حرفش رو و هر پیشرو رو چش بذاریم و همیشه بدونیم اون چیزی که از زمون کاسته بهترین ها بوده اون چیزی که خداون از تشریعاتش از امور دینی اگر نماز گفته اگر شکل و هیئت بوده از خیافه بوده از نماز و سنت بوده از ذکر بوده از رفتار با پدر و مادر بوده از خوش رفتاری و مردم بوده. هر چیزی که شرع از من خواسته بهترین ها بوده. هیچ سخنی دیگه بهتر از سخن خدا نیست. این تکبر خداوند و کبرو تکبر. یا آیهال مدفسر قم فاند و ربك فکبر و ثیابک فتح فتح و ثیابک ثیاب دو ثیابه لباس و تقوى. خیر. لباس لباس تقوا داریم و لباس لباس این جامعه ای که بر داریم دو تا لباس داریم لباسی که بر پوشش قلب ما هست از استقوا و لباسی دیگر این بعضی از مفسرین گفتن اینجا مراد وسیاء و کف سهر قلب پاک کن اعمال پاک کن اعتقاد پاک کن طاهرش کن از شرک آلایشش کن از بدعت از گناه از معصیت این دیابه هرچند که ما به هر دوش امریم که طاهر بکنیم چه لباس منتاهر بشه از نجاست و چه لباس قلبمون، ایمانمون، پرهیزگاریمون که باید تاهرش بکنیم، پاک بکنیم، آلایشش بکنیم از ناالایشی ها، از ناپاکی ها چه معصیت، چه بدعب و چه گناه و شد. این چیزی که خداوند اینجا دستور میده به رسول الله صلی علیه وسلم که در اون مقام هستن ولی ماهاییم که وقتی خداوند دستور میده به بزرگ مراد بزرگی امره وقتی که میگه بیا بکف طاهر و خودش طاهره لباس ظاهر و باطنش طاهره منظور ای بندگان من دارم به این بزرگ میگم که این داشته باش پس شما از باب اولا باید داشته باشید ای بندگان دیگری که رسول الله صلی الله علیه و آله قرار دادم شما باید چنین باشید همونطور که رسولمون پیغمبرمون چنینه و رجز فاجر ترجس همون اسنام همون بتها همون شرکیات مشرکین فاجر از اونها دوری کن و دوری بتلاب و اعلان براءت کن براءت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بعدش سوره براءت نازل میشه سوره توبه براءت رسول الله صلی الله علیه و آله از مشرکین براءت رسول الله صلی الله علیه و آله اهل شرک شرک چیه؟ اهل بدعات اهل گناه بحث براءت حتی اگر پدر مادر باشه همونطور که خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور میده که اعلان براءت بکنه از کی؟ از پدرش تو جایی که اجازه هم بعد خداوند بهش نمیده حتی تلاوی مغفرت هم بکنه به پدرش بحث براعته که ما براعت را از ابراهیم خلید الرحمن یاد بگنیم قبلا در بحث برا و برا مفصل صحبت کریم که دیگه اینجا دیگه نیاز به بحث پیرامون این مطلب نیست و الرجز فهجور و لا تمنون تستکفر ولی ربک ولا و تستكثر, ولربك ولا تمن تستكثر من تستکفر منت هدایتت من هدایتتون کردم من فلان کردم من فلان کردم هیچ وقت همه چاره رو خودت ندون ولی هستن که تفاصیل مفسرین زیاد روی این آیات ولی که ما ظاهر بر اساس غیر تفسیر خیلی است، فقط داریم از این آیات قبول میکنیم ولا لا تمنون تستکفر منت نظر. رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بیفرمایان لا يدخل الجنه منان ولا عاق کسی که صاحب منت وارد بهش نمیشه و بهشت خاصیه یا ابتدائم وارد بهشت نمیشه عقوبت میشه الله عالم هر چه این حدیث حدیث فعیده یک عقوبتی هست بر کسی که منت گذاره منت برصده من فلان کردم من این کار رو کردم این جامعه رو من هدایت کردم من دارم رو میدم من دارم فلان میکنم این مننت گذاشتنه کسی که صاحب مننت خداونده من تو را هدایت کردم. من شما را هیچ کس جز خداوند نیست قلب شما را اصلاح کرده. هیچ کسی جز خداوند نیست که مننت بر سر شما گذاشته. بله شاید کسا، کسانی صاحب مننت بر سر ما باشند نه اینکه خودشون بگن ما باید به عنوان اینکه اینها اسباب و وسیله بودن به عنوان یک مننت خداوند بر من گذاشته اونها رو مثل پدر و مادر. شکی داری شد که من نت دارم ولی این منت از کجا آمد؟ از طرف خدا. و خداوند گفته در مقابل این منت پدر و مادر فلا لهما اف. اف من احترام اونها رو را هیبسه. تست تا اینکه مردم طبعت بشن. مردم به طرف دیان اگر منت گذاشتی خودمو خود مردم از فراری میشن، از دوری میجوین. ولی قرب کفصب و در مقابل پروردگار تبور باش، استقامت بکن. صبر استقامت صبر تحمله تحمل بکن اون مصیبت هایی که در مقابل دعوت به ارمینده که در ما قبل از این جلسه اشاره کردیم به اون مصیبت هایی که بر سر رسالتشون در اومد قبل از هجرت چه مصیبت هایی کشید چه درد هایی کشید، کشیدن این چیزی هست که خداوند داره دستور میده به رسول الله صلی الله علیه و وسلم که از باب اول رسول الله صلی علی محمد الله علیه و سلم شاملش مشبن. قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سال كارشبوت دعبتش بوت بسيئينو توحيد توحيد عبوديات وبعد العشر وبعد العشر عرج به إلى السماء بعد ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعراج واقتان كم قبل معراج واقتان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء النشاء م adequately رسول الله عليه السلطTC والسلام عبو طالب فوت میشه به عنوان یک پشت، به عنوان یک پناه برای رسول صلی اللہ علیه کس که پشتیبانی ازش میکرد فوت میشه خدیجی هم فوت میشه رسول صلی اللہ علیه وسلم در یک دلتنگی سختی به سر میبرن حالا اهل سیرت اون سال را سال عام حوض نام بذاشتن اندوهترین سال برای رسول صلی الله علیه وسلم که هرچند که این نام گذاشتن از سبق اهل سیرت نه از سبق خداوند خداوند برای دلداری رسول الله و قوت قلبش، از منتهایی که بر سر رسول الله و این بود که ملاکهای خودش را میفرسته، ابتدا در کعبه، سینه رسول الله شکاف میدهد و قلبش را با آب زمزمه میشود. مهیاش میکنم برای اصرار و معراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لينرجعوا من آياتنا تا آخرین آیاتی که در اصرارش اول اسرار قداس رسول خدا (ص) با بورا که, که هر قدمی که میگذاشت اون محل دیدی بود که چشم انسان کار میکنه در یک شب رسول خدا (ص) بر سر اون بوراقی که بین علاق و اسبود چنانچه چه بسار بسش میکنن بر بس اون بر اون سوار میشن میتونه است رسول خدا (ص) پرواز بکنه ولی که خداوند بوراقی را گذاشت. اونم یک وجذه حکیم و خداوند در کارش بی حکمت نبوده. میتونست هجرتش بده از مکه به مدینه ولی خداوند این کارو نکرد که یک شب راست هجرت بکنه به مکه بم... از مکه به مدینه ولی این کارو نکرد بحث هجرت که اومد بعد از سه سال بعد از مصر و معراج با چی بود با پای پیاده بود بعد با شطور بود اول رفت به غار با خودش رفیقی برد منوان همراه نیمت ترس بکنه نیمت برای خدا بهش بیاره این از توکل که بهمون یاد بده که بر خدا بشیم، اخذ اسباب بکنیم، حادثه اسراء مشتکین انکار کردن، او صدیق، صدیق بود خاطر اولین کسی که ایمان آورد به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، در اینجا برای بار دیگر رسول الله را تصدیق کرد، وقتی که اومد، گفت بعد اصرا که برگشته بود، اسراء معراش، وقتی گفته بود که من، اصلاح رفتن بیت المقدس مشرکین گفتن آه اینم حبوبت ببین رفیق داره دعا میکنه که یک شبه رفته به بیت المقدس برگشت کسی که بیت المقدس رو ندیده بعد میگه حبوبت سبیه این کان قد قالها فقط صدق اگر گفته راست گفته این صدیقه اگر رسول الله صلی گفته حقه مؤمن با شدین باشه اگر گفته حقه کلام رسول الله شک در حق بودنش نیست این کان قد قالها فقط صدق بعد از رسول الله ص میکنیم که خدا جلو با ما بردن قافله و اون نمیدونم اون سفر بیت المقدس همشو جلو چه شما برد که دارم میبینم اونجا هستن رسول الله صلی الله علیه و سلم میره به بیت المقدس در اونجا پشت سرش تمامی پیامبران خدا رو میکنه که پشت سرش نماز بخونن برای تمامی پیامبران خدا نماز میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم سپس بعد از اون پرواز میکنه همراه جبرئیل به آسمونا آسمون اول یک پیامبره، آسمان دوم پیامبر دیگر رو با موسی و نمیدونم ادریس و با هر کدوم دری از آسمان که میزنن باز میکنن میگن که محمد صلی الله علیه و سلم هر کدوم از اون پیامبران یک نوع خوشامدی بهش میگن تا به آسمان دیگر تا آسمان هفتم میرسه به ابراهیم خلیل و رحمان بعد از اونجا به صدقه المنتها میرسه اون درختی که رسول از بسش میگن که برگهاش مثل گوش‌های فیل از زیر اون صدقه المنتهى رودهای جاری هست از جمله رودهایی که گفتیم رودهایی به بهشت و رودهایی در این دنیا و رودهایی به حوض در برزخ سراسیر میشه بعد از اون جبرئیل می بیاد دیگه من بالاتر از این بعد از آسمان هفتم دیگه بالاتر از این نمیتونم بیام بعد رسول الله خودش به تنهایی میرن بالا صحابه سوال میپرسن آیه خدا را دیدی در روایت می بیاد ان اراه چگونه خدا را ببینم حجاب و نور حدیث صحیح مسلم حجاب و نور لو اشرقت صبحات و احرقت بصري من خلق. این حدیث رد فکر علوب داره اگر خدا همه جا بود پس چرا رفت به جایی که گفت جبرئی دیگه من نمیان؟ رف باون باون بالا از این نمیام چرا رفت به اون معراج به اون بالا رفت به اون معراج سپس فرمود حجابی از نور بود بین من و پروردگار اگر یک نور از فرطوب شعاع صورتش عبور بکنه تمامی مخلوقات آتش خواهند گرفت مخلوقات تحمل رؤیت یک نورشو ندارند همه آتش میگیرند حجابی باید از نور باشه تا اینکه کسی آتش نگیره. انجیلین رسول الله صلی اون حجاب و اون مقامو برس میکنه. چگونه خود پروردگار رو ببینم پروردگاری که اینقدر عظمت داره. اونجا هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نمازهای پنج‌گانه اول پنجاه بعد فرض میشه، سپس میشه پیشو میاد پیش موسی موسی من امتمو امتحان کردم نتونستن برو کمتر بخوا 5 تا 5 تا نماز کم شد تا اینکه رسید به پنج‌بعده که اجر همون 50 وحده رو داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا غیریتی که بفهم ملاقاتی داشتن و پیامبران خدا جهنم را دیدن، بهش را دیدن، بحث بهشت رو کردن و در احادیث اومده که ما قبلا در سیرت بحثش کردیم که دیگه اینجا نیازی به بحث کردنش و باز کردن این مسائل نیست. و بعد العشری عرج به السماء و فرضت علیه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاثة سنين، وبعدها أمي بالهجرة الهجرة إلى المدينة. وصلى الله على محمد وعلى اله محمد.